وی و سالون 21 حسین دوشنبه شب راه زمین تحیور از اعتراض هزار نفر به رد صلاحیتشان در شورای نگهبان و مروری بر عناوین مهمترین خبرها ب امروز و امشب آغاز مینمایید عملیه کلامی محمد جوادی لاجامی به حسن خمینی با زیر سوال بردن اجتهاد وی و نظر کارشناسان که اگه همینجوری زمینای اطراف تهران رو به این آقا جواد بدن دیگه خود امام امت هم میبره زیر چاول توصیه عسانی روحانی رئیس جمهور که مردم در هیچ شرایطی نباید به صندوق‌های رأی پشت کنند و توصیه ناظران به ایشان که الان شما باید نگران پشت شورای نگهبان باشی نه پشت مردم و اعلان فرمانده نیروی دریایی سپاه که از ملوانان آمریکایی دستگیر شده کلی فیلم گرفته ایم و درخواست فعالان نرسه فخش سیدی غیرمجاز کشور که داداشت ما ما تو کل سر چهار رای دنیا پخشش میکنیم مهمترین سرخط خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکار خوش آبازم بل بل. علی متحری نماینده مجلس در باری وظیف گشت ارشاد گفت از نظر اسلام ما حق تجسس نداریم یعنی اگر زن و مردی یا دختر و پسری در خیابان با همراه راه می روند این بگویم شما چه نسبتی دارید زن و شوهری نیستید اینها درست نیست در همین رابطه یکی از کارشناسان امور دلواپسی کشور به خبرنگار ما گفت وقتی که یک نماینده اصولگرا اینطور در مورد مسایل ناموسی نظر میدهد دیگر هیچ توقعی از اصلاح طلبان غربی و باقی گروه های ماند نباید داشت و افزود دانستن نسبت زنان و مردان حق معموری نگشته شده است و مستحب است معمور حتی به پاسخ شفاهی آنها هم اکتفا نکرده همانجا آنها رو اثبات مدعایشان به پزشک قانونی ازام نماید تا خدای نکرده رابطه نامشروعی در کشور پا نگیرد پایان مشروع اخبار